داستان دیو و دختر این داستان را بانو الهام رضایی زنگنه از کرمانشاه نقل کردن یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود توی دهکده دور افتاده مردی با زن و تنها دخترش زندگی می کردن. اونا کنار هم زندگی خوب و خرمی می داشتن تا اینکه زن بیمار شد و از دنیا رفت مردم با یه زنی ازدواج کرد که بسیار حیلگر و بد جنس بود مدتی بعد زن پدر دختری زاید و از اون به بعد شروع به بد رفتاری با دختر شوهرش کرد اون همیشه چیزای خوب رو برای دخترش میخواست و چیزای بد رو برای دختر شوهرش دختر مرد بسیار خوشاخلاق و مهربون بود به همین دلیل هر روز با خواهر کوچیکش برای چیدن پر به صحرا میرفتن و مقداری پر میچیدند تا یک روز وقتی که مشغول جمع کردن پر بودند باد شدیدی اومد و دختر بزرگ را داخل یه چاه بزرگ انداخت چاه بسیار تاریک بود و دختر خیلی ترسیده بود اون با دقت به اطرافش نگاه کرد ناگهان جلوی خودش یه دیو بزرگ و قول پی کردید دیو جلو اومد به چهره وحشتزدهٔ دختر نگاه کرد و از اون پرسید غذای مادر من خوشمزه است یا غذای مادر تو دختر جواب داد ق... ق... زای مادرش شما دیو از اون پرسید صورت من قشنگه یا صورت مادر تو دختر بازم جواب داد صورت شما قشنگه دیو باز پرسید خونه من مرتبه یا خونه مادر تو دختر بار دیگه گفت معلومه خونه تو دیو با خوشحالی به دختر گفت برو کنار حوض آب اگه آب قرمز اومد حرفی نزن آب سیاه اومد حرفی نزن و آب سفید اومد با صدای بلند منو صدا بزن و بلند سه بار بگو دایه, دایه دایه دختر کنار حوض آب استاد آب قرمز اومد اون حرفی نزد آب سیاه اومد و حرفی نزد آب سفید که اومد با صدای بلند گفت دایه دایه دایه دیو با شنیدن صدای دختر اون رو به داخل حوض آب هل داد وقتی از آب بیرون اومد صورتش بسیار زیبا شده بود کف دستاش ستاره و کف پاش ماه قرار گرفته بود پیراهنش سفید و بسیار خوشبو شده بود. تو همین موقع باد شدیدی اومد و دختر را از چاه بیرون آورد. دختر با عجله به سمت خونه رفت. زن پدرش با دیدن چهره و سراوهز مرتب و زیباش بسیار عصبانی شده از اون پرسید چه کار کردی که اینقدر زیبا و خوشبو شدی؟ زود بگو که دختر منم اون کارو باید انجام بده. دختر ماجرا را از سیر تا پیاز برای اون تعریف کرد روز بعد دو تا دختر بازم برای چیدن پر به سمت صحرا رفتن و این بار باد تندی وزید و دختر زن پدر به داخل چاه افتاد دیو پرسید غذای مادر من خوشمزه است یا غذای مادر تو دختر در حالی که دست به کمر گذاشته بود گفت معلومه قضای مادر من دیو پرسید صورت مادر من قشنگه یا مادر تو دختر بار دیگه گفت خب صورت مادر من دیو پرسید خونه من مرتبه یا خونه مادر تو دختر جواب داد معلومه خونه مامان من دیو گفت حالا که اینطوره برو کنار آب هست اگه آب سفید اومد حرفی نزن آب قرمز اومد حرفی نزن آب سیاه اومد منو صدا بزن و سه بار بگو دایه دایه دایه دختر به محض دیدن آب سیاه شروع به فریاد کرد و گفت دایه دایه دایه دیو با شنیدن صدای دختر اون رو به داخل حوزه آب هل داد چشمتون روز بعد نبینه وقتی دختر از آب بیرون اومد تمام صورتش سیاه و لباساش بدبوب و کثیف شده بود باز یه باد شدید اومد و دختر از چاه بیرون آورد وقتی به خونه رسید مادرش از دیدن اون بسیار ناراحت و غمگین شد سالها به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز پسر پادشاه به خواستگاری دختر بزرگ اومد اما روز عروسی زن پدر دختر را زندونی کرد و دختر خودش رو پای سفره عقد گذاشت. همین که داماد خواست چهره زیبای عروسش رو ببینه متوجه شد که چه کلاه بزرگی سرش گذاشتن. به خاطر همین مراسمو به هم زد و با اسب به سمت خونه دختر مورد علاقش رفت و اونو برای همیشه از دست زن پدرش نجات داد. دختر و شاهزاده کنار هم سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند.